Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi al-alamin ولا khowla ولا quvete illa بالله العliy العظiem والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحین والسلام على المهدي الذهی وعد الله عز وجل به الامام عن يجمع به الکلم و یلم به الشعث و به الارض قسطن و عدلا و یمکن له و ینجز بهی و عد المؤمنین السلام علیکه یا سیدنا و یا مولانا یا عبا الحسن یا علی ابن موسى الرضا و رحمت الله و براکاته کسانی که به عنوان حجت خدا از سوی خدا معمولیت پیدا تا دست انسان‌های درمنده رو بگیرند و در این زندگی پرچم و خم اونها رو راهنمایی به راهی که خدای متعال دوست می‌دارد و برای اونها قرار داده راهنمایی بکنند که ما اینها رو تحت عنوان کلی حجت‌های الهیه نام می‌بریم که این کلمه خجت الهی اعمه یعنی دربرگیرنده هم پیغمبر و هم امام این بزرگواران باید دارای دو تا خصوصیت باشند اگر کسی آمد ادعا کرد حجت خدا هست و این هر دو خصوصیت رو داشت واقعا حجت خدا هست و اگر که از این دو حجت یکیشو نداشت یقیناً حجت خدا نمی تواند باشد این دو نشانه و دو علامت چه هست که تمام حجتهای خدا علیکم باید دارای این دو نشانه و دو تا برنامه بارز باشند یکی از این دو نشانه این است. حجت خدا باید دارای علم الهی باشه. رو باید خدمتون توضیح خواهیم داد نشانه دوم باید دارای قدرت الهی باشه. این هر دو نشانه شرطش این است که اون کسی که به نام حجت خدا خامده میشه، حال یا پیغمبر است یا عبابه. علمش رو از جایی نگرفته باشه. در مسئله قدرت شم این قدرت رو از جایی کسب نکرده باشه تمرین نکرده باشه ممارست نکرده باشه بدون هیچ سابقه ای کارهایی رو فرق بین قدرت الهیه و علم الهی در اینه حجت خدا علمش را همواره باید نشون بده این نییشه کسی سراغش بیاد مذهبی رو سوال بکنه و این بزرگوار جواب نده این چنین نیست باید هر کس به او رجوع کرد سوال داشته میخواد بحث کنه مناظره کنه آن بزرگوار پاسخور رو باید بتونه بده اما قدرت الهی اینجوری نیست که حالا هر کسی اومد سراغ یک پیغمبر یا سراغ امامی و از او درخواست کرد که کار خارق عادت انجام بده به درخواست او حتما انجام بده این چنین نیست کار خارق العاده نیازمند ازن الهی است قدرت رو خدا میدهد اما صرف کردنش و خرج کردنش رو حتما بعد خود خدای متعال اجازه بده نمونه خیلی زنده این ماجرا و خیلی ساده که هممون میدونیم وجود مقدس پیغمبر اکرم هست و این بزرگوار شما در جنگ اهد نگاه میکنید جنگ بدرم نگاه میکنید در جنگ برد پیغمبر سی ست اول بیشتر یاور نداشتش و بعد هم قراشیان حداقل اقل هزار نفر با ساز و برگ جنگی بودند خدای متعال به دست پیغمبر این قدرت رو جاری می کند که برای پیغمبر یاور میفرسته یاورش پرشده ها و ولذا در اونجا این پیغمبر پیروز میشه اما در جنگ اهد این چنین نیست پیغمبرش رو خدا به اون فرم یاری نمیکنه کنه مسلمون ها شکست میخورن. این نیست که حالا هر وقت هر که سراغ پیغمبر یا امام رفت که کار خارقل العاده انجام بده حتما انجام بده نه اینطوری نیست خدای مطال بعد به او ازن بدهد این قضیه رو باز نمونه که همه تون باشاشون از این حضرت عیسیٰ مسیح علیه السلامه البته ما سنگه همونو قبلن با مسییان با کندیم تذکر میدم تکرار میکنمش ما حضرت عیسیٰ مسیح به نظر ما مسلمون ها و بر حسب بیان کتاب مقدس قرآن یک پیغمبر بزرگ خداست این فراموش نشه ایشون پیغمبریست که خدا از او بسیار در قرآن تعریف میکنه هم از خودش هم از مادرش اما هرگز به ما اجازه نمیده که پامون رو از این مقدار فراتر بگذاریم و این بزرگوار رو که پیغمبر خدا هست ببریمش بالاتر در مرتبه و در مرحله علوهیت قرار بدیم مطلقا مطلقا نه او بالاتر از او پیغمبر اسلامه پیغمبر اسلام بالاترین این مرتبهی که داره این است که پیغمبر خداست و بنده خداست هیچ پیغمبری را نرسد که بیاد و ادعا کنه که من خدا هستم اینا هم که شما در انجیل می‌بینید اینا حرفای عیسی مسیح نیست. اینا رو ساختم ببین بزرگوار نسبت دادم بعدا که عیسی مسیح جبر بیزاده که من خدا هستم. به هر حال از نظر ما هم عیسی مسیح و هم مادر گرانقدر بزرگوار او مریم فوق العاده در نزد خدای متعال موجه‌اند، وجیح‌اند. یعنی صاحب آبرو هستند. خب های متعددی هم قرآن از این دو بزرگوار میکنه که حالا جای پرداختن به اونا نیست و بحثمون میمونیم عیسی مسیح در سوره آل عمران نگاه کنید عنوان میکنه بنی اسرائیل من یه پیغمبری هستم که خدا مرا به سوی شما فرستاده یه کارای انجام میدم تو این آیه شریفه ای که قران کریم بیان میکنه هر دو جهتش خوابیده یعنی هم علم الهی هم قدرت الهی یه هر دوش خوابیده کارایی که من انجام میدم اینه این نی اخل قولکو منتینه که حیعت تاییر این ننی گل من یک گلی میگیرم دستم این گل رو به شکل پرنده در میارم یعنی پرنده جلی میکنمش خوب. فانفخو فی انفخو در اون میدمم یعنی فوت میکنم پس یه پرنده گلی درست شده توسط ایسا مسیح این بزرگوار چی کار میکنه در این پرنده گلی میدمد فوت میکند چی میشه اون وقت فایکون تیرن به اذن الله این اذن الله را داشته باشید این پرنده گلی به اجازه خدا اجازه خدا معناش اینه که خدا به من این قدرت رو داده حالا هم به من میگه ازش استفاده بکن این منو ایجازه است خب وقتی در مودمیده هم پرنده واقعی میشه پرنده زنده واقعی یه گنجش گلی درست میکنم توش میدمم میشه گنجش که واقعی خب ایه کارمه دیگه چی کار میکنی شما؟ آها ابرال اکمح و الابرس و آخی الموتا به افن الله کسی که کفور مادرزاده کسی بیماری وی تیدیگو داره نظر پزشکی بیماری برست که غیر قابل درمانم هستش من اینها رو درست درست میکنم شفای کامل بیدم این هم کار دیگمه احی الموتام هستم یعنی من مردگان را زنده میکنم منتابه از آخر کلمه آمده به الله سر خود نمیتونم بکنم قدرت رو خدا داده اما استفاده یه از این قدرت رو خدا به من مکور به اجزه خودش کرده هرگاه اجازه بدی استفاده میکنم خیلی خوب استفاده میکنم تا اینجا قدرت های الهیه بود دنبالش اونبه اکم به ما تاکلون و ما تدخلون افیب و شما در خونهاتون هرچی بیخوری دار و هرچی ذخیره میکنید من بهتون خبر میدم این علم الهیه از این نمونه آیات در قرآن کریم بسیار زیاد که حال دنبالش نمیخوام بریم چون مقدمه بحثمون بود از جمله حجت هایی که خدای متعال برای همه انسان ها قرار داده یک شخصیتی است که امروز مهمان مملکت ماست اسم او هست علی فرزند امام موسی بن جعفر سلام خدا هم بر او و هم بر بدر او باد این بزرگوار دارای تمام این خصوصیاتی که عرض کردم هست چون عنوانم میکنه من حجت خدا هستم من حجت خدا هستم هم کارهای خارقل عاده انجام میدم منطورن نه همیشه اون وقتی که خدا اجازه بده بازم یادم اون نره و بعدم نظر علم الهی هم زندگیش پر یک پهلوانی در عرصه دانش هست این بزرگوار که کمتر در هستی نظیرش رو ما دیدیم حتی کاری که انجام میداد که در آخر سخن براتون خواهم ارز کرد این کار رو هیچ کس تا حالا انجام نداده هیچ فهلی، هیچ پهلوانی، هیچ دانشمندی در چول عمر بشر یه همشین کاری که امام رزا علیه السلام انجام داده اون نتونسته انجام بدهد اون کارچه بعدن خدمتون ارسا هم کرد اما نسبت به بحث قدرت الهیه هرگاه خدا اجازه بده مدتی بارون نیومده بود مردم خدمت امام رزا علیه السلام آمدن پسر پیغمبر، کم آبی و بی‌آبی و خطرات بعد از او شما پسر پیغمبر هستی، پیش خدا وجی هستی. دعای شما بکنید. خدا برای مطالب به دعای شما بار مفرسته. امام اجابت کرد. خب کی بیاییم؟ چیکار بخوای بکنید؟ دوشنبه بیایید و هم‌دگه می‌ریم به محل مسلح اونجا نماز استسقا میخونیم یعنی برای بارون ریختن دو شنبه که میشه مردم میان امام وضع خیلی خاصی داره یک پیرن سر تا سر پوشیده پاها هم پایی برهنه با همون حیعت پوش سر امام حرکت میکنن میگن مسلح امام دارکت نماز میخونه مردم هم میخونن و بعد بعد از نماز امام دعا میکنه خدایا برما بارانی فراوان و سرشار به باران این دعای امام بود هنوز دعای امام تمام نشده ابری در آسمان ظاهر میشه. افرادی خدمت امام بودن گفتم بریم منزد منید داره باران میریزه الان خیسمون میکنه امام فکر نه این باران معمور به سرزمین شما نیست مال جای دیگه است این عبره افش<td>اد اینجوری ابر اومد ابر یازدهمی که اومد امام فربودن این ابر معمور به سرزمین شما شماست قرار باران بر شما بریزه بسیار پر خوناتون رفتن منزه منزه که رفتن باران شروع شد چه بارانی همونطور که حضرت دعا فر بوده بودن بار شد این خبر در میان مردم پیچید بیچید. علی ابن مسر رضا رفته نماز خونده دعا کرد خدا بارون فرستاده. یه دی هستن اینا پس طبیعتند در میان ما به نام حسود معروفند خودشون کاری نمی کنن هنری ندارن اگه دیگری دشته باشه کاری انجام بده خلاصه براش می زنن این تعبیر گلی ماجراست خب به گوش مأمون هم رسید طبیعتا اونم که هیچ خوششته می آمد چون اصلا آوردن مأمون امام رضا رو از مدینه به مرو و طوس فقط به خاطر بود که امام زیر نظرش باشه از نفوذ امام در میان مردم می ترسید همین و همین علت آوردن مأمون این ماجرا بوده خب ناراحت از این ماجرا شخص بنامه حمید ابن مهران هست از اون بادمزون درقابچینای حسابی میبینه تغییر مهمون رو میگه ولی چی متغییرین شما به خاطر این جد با این بخواه این رو بشکنیمش مرتب داره شهرش بیره برادر محبوب تر میشه دیگه اون نفهمیده البته قرآن آیتی دارد هم یحسدونن ناصد الا ما آتاهم الله من فضل حسودی میکنن که خدا از فضل خودش به کسی داده باشه اون کار خداست خدا داده است با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است حالا امام رضا بنده خدا و حجت خداس خدا ایش خدا دادالا میگه این داستانه میگه کاری نداره که مجدسی رو آماده بکن علیه بمسرضا باشه منم باشم بدی دیگری هم باشم من در اونجا رو مفتزهش بکنم لهش بکنم معمولا و خدا میخواد این جلسه آراسته می شود آراسته می شود امام نشسته یکی از صفاتی که برای امام رضا هست هر وقت رفتین زیارت این بزرگ بزرگوار حتما وقتی سلام میکنید بهش یکی از سلاموتن هم این باشه از سلام علیک ایوهل امام و رعوف خیلی مهربونه حالا این جهاتش چی هست بازم خیلی مهربونه تو احمه ما امام رضا خلقش عجیب غریبه خب اما آمد تشور دنشستن در اونجا حمید ابن مهران شروع کرد به سخن گفتن که این چه بازی شما در آورده بیرون رفتیه دعایی کردی نمازی خوندی تصادفان با آمدن باران همراه شده اینه به خودتون چرا نسبت میدین باز امام هیچی نفر, بوده. هیچی نفر بوده اضافه کرد که اگر شما راست میگید داره یه همچین قدرتی هستی نا اون دو تا شیری که در داخل اون پرده هست بگید اون دو شیر بیایند. و مرا پاره کنند آه. خب دیگه اینجا جسارت رفت از اصد خودش هم درخواست کرده بود امام علیه سلاط و سلام کاری انجام داد البته مقداری از کار امام رو ما هم میتونیم انجام بدیم مقداریش رو نمیتونیم انجام بدیم هر انسانی در مملکت وجودی خودش این قدرت را دارد که خالق باشه همین الان شما شش خطتون رو همدیگه بذارید به جای دو تا شیر هزار تا شیر میتونید در پهنه وجودی خودتون درست بکنید نیست این جور چرا هستش هرچی چی بخواید خلق میکنید فقط فرق ما و امام درینه که ما خالقیتمون در ممدکت هستی خودمونه اما امام این خالقیت را که در پهنه هستی او هست، بهش وجود خارجی میده. این فرق ما به امامه. چطور هم وجود خارجی میده؟ اونم خیلی دوشوار نیش. تبدیل عناصر به هم دیگه. امام علیه السلام و این کار رو انجام میده. نه اون دو شیر پرده، نه اون که رو پرده بودن که. امام دو شیر رو واقعا میسازه، واقعا میسازه. و بعدم به اینا وجود خارجیش هم میده دوشیر هم تشریف فرما میشوند در محضر جمعیتی که حالا دیگه از وحشت وحشتشها حالی دارن سراغ حمید بن مهران میان میگیرن پارش میکنن قطع قطعه میخورن حتی خونهاش هم میریسن یه قطره خونم نمیذارن باقی بمونه آمدن مقابل امام ایستادن باز اینم خدمتون بگیم میدونید البته علم جانور شناسی به ما میگوید همه موجودات عالم سخن میگویند همه میگند سخن گفتنشون مثل ما البته نیست ما هنجره داریم سیب آدم داریم تارهای صوتی داریم و این حرف رو داریم اونا به گونه دیگر سخن میگویند مثلا فرد میفرماید مورشا با هم حرف میزنند حرف زدنشون از این مسیر که نیستش که چون حرف زدن معناشنی تفهیم مطلب طرف مقابل مورشا ها وقتی میخوان با هم حرف بزنن با هم برخورد میکنن در این برخورد این آنتنهاشونو با همدیگه ارتباط میدن شاخکاشونو در ارتباط این شاخکا با همدیگه وقت حرفاشونو اونجوری میزنن و عجیب از قرآن عظیم ما کتاب علم خدای مطاب انشاءالله اون زمانی که در باری قرآن شروع کردن این صحبت کردن و یاد دنبال بحثای قبلیمون داشتیم انشاءالله و خواهید دید خدا چه کتابی فرست داده و ما چقدر نسبت به این کتاب بی توجه هستیم واقعا یه سوره به نام سوره نمل تو قرآنه از 114 سوره قرآن کریم بگیش به نام نمله یعنی مورچه هستن مهنانی سوره یعنی مورچه. چون در این سوره داستان مرشا آمده عزت سلیمان علیه السلام پیغمبر بزرگ خداست از وادی و سرزمین مرشا میگذره حتی اضاعت و علاوات نمل قالت نملتون یا ایوهن نملت خلومساکنکم لایحتمنکم سلیمان و جنود او و هم من سرزمین مورچه ها با اسبا و سواراش یک مورچه بقیه مورچه ها رو صدا زد باشون حرف زد گفت مورچه برید در داخل لانه هاتونا الان سلیمان بالشکریانش میان زیر دست و پای اسبا اونها لگت کب میشید اونا حالیشون نیست شما رو لگت مال میکند بران اون وقت میگه مورچه ها با هم حرف میزنن. مورش به تلدین بیس سال کار میکنه این فیسوف خیلی معروفی بلشیکی سال. در زندگی مورچه ها مطالعه میکنی یکی از حرفاش همین حرفه مورچه با هم حرف میزنن بگذاریم از این قضیه دو دوتا شیرکارشونی تمام کردن ولی خدمت امرز علیه السلام با امام سخن گفتند سخن گفتند مضمون سخنشون این بود که یبن رسول الله با معمولیتمون تمام شد اگر اجازه میدید تکدیف اون ناکست رو هم قلاصه ما یک سرش بکنیم همه این که متوجه معمول شدن معمول از ترس خشک کرد امام فر بودن نه معمولیت شما به همین میزان بود که انجام دادید او یه بررامه دیگری و مساله دیگری به همون جایی که بودید برگردید این یک نمونه قدرت الهی است قدرت الهی است خدمت حضرت غزا علیه السلام بود ناگهان کبوتری خدمت امام آمد یا گنجشکی حالا چون که با امام صحبت کرد چون امام امام ما که تنو نیستش که امام همه است وقتی اون جیک جیکاشو کرد یا اون قرقره خاص کبوتریو کرد امام علیه السلام به یکی از همراهان فرمود یه چوب دستت بگیر دنبال این گنجش برو یا این کافتر برو این تو رو به لانش راهنمایی نمایی میکنه این آمد همین الان به من گفتش که یه مار داره طرف لانش میره و این مار میخواد جوجه هاش رو ببله امین اونم میگه به دنبال این فرمایش امام چوب بر دست گرفتم دنبال پرنده راهنما رفتم به لانش رسیدیم و مار اونجا دیدم و گشتمش یک فرد سندیست خب نه مسلمونه، نه زبان عرامی برده، نه زبان فارسی برده. میگه من دین حق رو گم کرده بودم. دنبال دین حق میگشتم. مرا به محصر حضرت علی ابن موسر رزا رهنمایی کردند. چون شنیدم که حجت خدا در میان عرب ها ظاهر شده. زمان علی ابن موسر رزا. خدمتشون رسیدم. با من به زبان سندی و سخنگفاری. نه عربی به زبان سندی سخنگو و مرا به راه حق دقیقا راه کرد بهشون ارز کردم که بسر فیغمبر من یک کلمه عربی بلد نیستم یک کلمه بلد نیستم امام فرمود دهانت رو ببند هست. همین انگشت رو بر روی دو تا لب کشید به محض اینکه کشید اسماعیل سندی میگوید دیدم که تمام لغت عرب رو بلدم او فقط لغت عربی رو درخواست کرده بود اگر از امام درخواست میکرد هرچی لغت در عالم موجوده به او یاد بده قطعا یاد میدادش. در این خود من تعدید ات دقل ندارم اینجا قدرت های الهیه میاد و امام رو مردم معرفی میکنه که این شخصت عادی نیستش شون از جای دیگری نشت میگیره برنامهش و کارش از جای دیگر نشت میگیره وقتمونه میخوام بیشتر از این هم باشه یه خودمالا میخوام کتاترش کنیم به پاسخ سوالات برسیم انشاءالله این تیکرم خدمت تو میگم که اول صحبتم گفتم مهمترین کاری که امام رضا میکنه اینه که از این کار مهمتر امام نکرده و هیچ کس هم مانند امام یه همچین کاری نکرده اون کار چیه معمون از هیچ فرصتی برای ضرب زدن به امام رزا خودداری نمی کردش یه روزی فرستاده معمون خدمت امام آمد و به ایشون عرض کرد که معمون از شما دعوت کرده در یک میده شما شرکت کنید میده سی که عرباب ادیان در اون میده چیم شرکت کنید امام فرمود برو به معمون بگو فردا من بعد از نماز صبح در اون مجلس حاضر خواهم شد. اونم رفت. شخص است به نام نوفلی، یکی از یاران امامه. وقتی فرستاده مأمون رفت، گفت یاب نرسول الله، من هیچ صلاح نمیدونم، شما به اون مجلس برید. امام فرمود چرا؟ آیا شو شما مجلسی میخواهید برید؟ که مردومانی که در آن میدس گرد آمدن اهل منطق و استدلال نیستن اینا شما هر برهانی براشون اقامه کنید از طریق سفسطه اون برهان رو جواب میدن امام یه جمله بیان کرده که این جمله را شیعیانی که دوستدار امام رضا علیه و السلام هستند بنویسن یا در کاغذ بنویسن یا در لوح ذمیرشون بنویسن جمله رو فوق العاده از این جمله فرمون نوفلی میدانیم معمون چه زمانی از این کارش پشیمان خواهد شد؟ چون معمون من رو بون مئلس احزار کرده برای که عرباب و عدیان بر من قالب بشمم و من در روزه شکسته بشمم برای خاطر این دواتم کرده اما معمون زمانی از این کارش پشیمان خواهد شد که ببیند من با اهل تورات به توراتشان سخن میگویم با اهل انجیل به انجیلشان سخن میگویم با آتش پرستان و ایرانیان به لغت اونها سخن میگویم ویرانی وجودمون نقش بهش بدیم امام داره درست میگه برای من داره درس میگه میگه مسلمون شیعه که دنبال من میری و افتخارت این است که علی ابن مزرزا رو به عنوان امام و حجت خدا انتخاب کردی این درس رو فرا بگیر اول دین خودت رو بشناس این اولیشه قطعا میدونم در این تقرید ندارم در میان شما سهله در میان مردم ایران شاید کم پیدا شوند که به اندازه این بنده ناچیز با افرادی که ادیان دگر داشتن نشسته باشن مرتده باشن یا افرادی که اسلام رها کرده باشند به جای دیگه رفته باشند. شما این مقدم رو از من به اعتبار این 40 سالی که تو این زمینه کار کردم قبول کنید من در بین این افراد سد نوود و رو سد نوود و یافتم که اینا نه از اسلام ناراحتند و نه از اسلام میبرند. او انا از ما مسلمون ها میبرند و کار مسلمون ها رو به حساب اسلام میذارن. کم پیدا کردم کسی با این کتاب یعنی قرآن عاشنا باشه و بتونه با آشنایی با قرآن سخن بگه چیزی شنیده به گوشش خورده. حالا امام علیه السلام و السلام این درس اولیه بدیهی واضح رو برای هر شیعه ای داره تطریف میکنه اون درسیست ابتداعاً بدان تو خودت بعد به چی معتقد باشید؟ بدون این دانه هایی رو هم بر مبنای استدلال و تحقیل و اندیشه استوارش بکن قرآن کریم شدیدن مزمت میکنه انا وجد دا آبا على امه و انا حالا آثارم و مقتدون یه ده میگن بابا نهی ما با تو این را بودم هم تو این را داریم میریم میگه بی خود داریم میکنیم ار خدا بدده شعور بده بروت بررسی و تحقیق بکن بررسی و تحقیق در آین مقدس ما نه تنها بلکه هرچی در دنیا زورت میرسه آین است و مذهب است و مصدق است و ایدیولوژی است و همه اینا باره همه رو به خون یاد بگیر خودت مقایسه کن اون وقت مقایسه کن امام رزا داره این درست رو میده اول اشون استاد محارف اسلامیه شک نیست علم علم الهی اونا رو بلده منم میگه برو یاد بگیر در حد مقدور خودت بسیار خوب و بعد از این نسبت به آنچه در اطرافات هست بی‌توابوت نباش هستن افرادی دارن فعالیت دیگه رو میکنن خوب بکنن مسیحی داره کار میکنه بودایی داره کار میکنه زردشتی داره کار میکنه بکنن تو باید از اونها مطلع باشی و اگر خواستی بری جای گفتگو بکنی یا اول این قضیه رو برای خودت روشن بکن که طرف مقابل تو چه اعتقادی رو داره به چه کتابی غ... من مثلا معتقده باید بر مبنای کتاب او با او سخن بگویی یک فرد مسیح قرآن تو رو قبول نداره که تو هم قرآن برش استدال بکنه میگه من اصلاح به کتاب معتقد نیستم او به انجیل معتقده امام رضا علیه السلام درس داره میده زمانی معمون از این کارش پشیمان خواهد شد که ببیند من با اهل تورات به توراتشان سخن میگویم همین کارم کرد اولین نفری که مقابل امام قد علم میکنه تو اون مجلس رسول جارود بزرگ یهودیانه حضرت هم کاری که انجام میده برایش تورات میخونه خیلی جالبه از حفظ هم میخونه فرمود من میخونم صفر تسلیه تورات رو تو نگاه کن به تورات خوده دانشمند تورات بوده یهود بوده یک دونه واوی بروبر نمیشه از حفظ میخونه براش از کتاب تورات برو بر استدلال میکنه که تورات به آمادن وجود مقدس پیغمبر و زلوار اسلام بشارت داده از اونجا برش میخونه استدلال میکنه اون میماند آخر کاریه وقتی میخواد با جا سلیغ نسرانی صحبت بکن یا مسیحی انجیر رو حضرت مطرح میکنه از انجیر یوهنه برو استدلال میکنه به منم داره این درست شو میده که اگر میخواهی با دیگران به مناظره مباحثه به پردازی باید از کتاباشون اطلاع داشته باشی نه تنها معارف خود رو بلد باشی و از کتابای اونم باید مطلب باشی بر مبنای همون کتابا ها به اونا صحبت بکنی این درس اولی است که از وجود مقدس حضرت علی ابن موسر رضا علیه حالا و طایت و صلاح میگیریم با یهودی بحث کرد با مسیحی بحث کرد با زردشتی هم که هربز بود بزرگشون ایشون بحث کرده یک پهلوان تک تنها یک جمعیت در مقابل امام علیه السلام در کجا تاریخ ما داریم یه کسی بگه من میشینم حبه میشین مقابل من با من بحث کنی و همه جواب میدم و منکوبتون میکنم بحث دومی که امام در اینجا مطرح میکنه و به ما داره درست میکه اسلام تو در سرزمین تو نباید محدود بشود مرز نداره این دین این دین دین جهانیه چی باید برن این تبلیغ این دین رو بکنن که آین مقدس خود ما باشه افرادی که بلد باشن چی رو باید بلد باشن هم معارف اسلامی رو بلد باشن و هم زبان بلد باشن تو عربها بنابرا انگلیسی حرف بزنی تبلیغ دینتو بکنی به زبان فارسی که نمیشه که پس زبان انگلیسی رو بلد باشی امام فرمود من با اونا به لغت خودشون سخن میگویم به کررات در زندگی امام رضا اتباه افتاده یه ملیس در بسره ایشون داشت به همین شکله همه جمع هم بودن یکی سوال که شما میگه من امام هستم فرمودار من امام هست او گفت که وقتی کسی امام هست باید همه لحجه ها رو بلد باشه فرمود بلد هم همه رو بلد هم. حالا در میان جمعیت شما هر کس که لحجه و زبانی دارد غیر از زبان عربی هندی داره، سندی داره، صقلابی داره، چی است؟ او بگوید تا من به او به زبان خود شرح بزنم، همین کارم کردش. پس هم دانش الهی که این بزرگوار میداشت، این دانش الهی رو انسان فرا بگیره از مسیر امام رضا علیه السلام، این مناظرات رو. هم راجب ادیان دیگر انسان مطالعات کافی داشته باشه. شما بدانید این ماجرا رو. بنده این که یه ای حرف رو میزنم چون عمرم توی این مسیر گذشته به والله العلی العظیم که قسم جلاله هست دلهای آماده و شیفته و تشنهی در جهان ما هست که اینها دارن دنبال یک حقیقت می گردند این حقیقت در آین ایسا مسیح نیست کتاب دست خوردهی که 500 و دوش مشکل داره این حقیقت در آین حضرت موسا نیست توراتی که این همه درش دریف صورت گرفته این حقیقت در آینی که زردوش آورده. و کتابی که نامش عوستاه است در اونجا نیست در آین مانی نیست در مذکش نیست در بوداش نیست یه کتابی کتابیسی شما هر چه بخواید تو خود جمع کرده علی ابن موسر داره برای ما اثبات میکنه این ماجره را از کتابتون کاملا اطلاع داشته باشید از این قرآن جدا نشوید تکامل رشدتون رقایتون در گروه همین کتابه حداقل در هر روز سیچلت آیه رو بخونید ترجمهش نگاه بکنید یاد بگیرید بعد با معارف دیگر کتابهای دیگرمون امام رزا آریه السلام داره با ما همچین درسایی میده حالا غیر از این زمینه ها این بزرگان ملازند پناهند و پناهگاهند. نمیخوام بخوام بگم ما امام رضا رو بخوایم به خاطر این ماجرایی که بخوام براتون بگم نه. اما کارمون که گیر کرده و دیدیم از وصال مادی هیچ چیزی ساخته نیست، اون وقت خدا راه دیگری بر روی ما باز کرده. راه توسل به این بزرگان رو. یکی از اینا امام الیبل موسر است. یه بزرگواری بود که چندین سال شهره در نقاب تیره خواب کشیده است و از این دنیا رفته دانشمند گرامی محروم آقای سید محمد کازم قذبینی بزرگوار من باش معنوس بودم حالا چه انسانی بود و بماند چه بیانش الان نیست اشون برای من داستانی تعریف کرده و شخصی هم که این داستان براش اتفاق افتاده الان زنده است این تو کتاب نیست دار وجود خارجی داره طرف دختر خانمی به نام زینب فاملیش هم شمسه احل خراماد لورستان شون در بچگی گرفتار بیماری آرتروز میشه آرتروز یعنی بیماری مفاصل وقتی مفاصل در بند میشوند و مشکل پیدا میکنند به میگن آرتروز گاهی وقته کسی خوششانسی میاره یه مفصلش گیر میکنه همه مفاصلش گیر میکنه به میگم پلی آرتریت وقتی دست و پا اصلا تکون نمیخوره دیگه اون وا این زینب از خردی گرفتار این بیماری میشه پلی آرتریت نه دستاشو تکون میتونه بده باهاشو پدر مادرش هر هرچی تونستن خرجش کردن آخریش عدسیش آسی شدن بیرونش کردن خونه یه مادر بزرگ پیری داشتین رو این دختر رو آورد نوشو یه نگرش بداره بعد به این مادر بزرگ پیری که خودشم سه تا پرستار لازم داشت گفتن که یه دکتری تو قوم هست این دکتر عجیبه کاراش یک دونه نسخه که می نویسه طرف خلاصه به کلی بهبود پیدا میکنه. بیچنه مادر بزرگ این دختر رو میگله سوار ویلچرش میکنه بیاره دشتیه قم با ماشین و میبره بطم این آقای دوتا. دوتر. دوتر من میشستم علم حضرت تو قم. دکترم رو مایه نمی کنه. بعدم مقداری دارو برای این بیمار مینویسه. پا ما دعالا نمیدونم. قرص آمپول هر چیست دیگه. خب عمل میکنن تون چند روز تو قم بودن؟ فایده نمیکنه برای بار دوم سراغه این دکتره میرن بازم یک سری نسخه دیگر مینویسه باز عمل میکنن به قول خارجه و قول ایرانی ها و قدیمی ها افاقه نمیکنه برای بار سوم میبرنش بازم نسخه مینویسه بازم فایده اینه میکنه برای بار چهارم که این مادر بزرگ این دختر رو میبره اونجا پیشه این دکتر دکتر اینقدر عصبانی میشه میگه دیگه اینجا ن یه دفتی بیاید تش اینجا از این بالکون اینو پتش بکنم با این از دستش آسی شدم دیگه و برای دکتر خیلی سخته مریضی چهار نوستش رو و خوب نشه خب دل این پیر میشکنه دلم بد بشکنه البته تا خیلی کارها صورت بگیره دل آبه سوز که سوزه تو کارها بکند تا آوی نیمه شبید به قول آفز رفع صد بلا بکند دلش میسوزه میاد بیرون کسی بهش برخورد میکنه میگه مادر مشکلت چیه میگه این تو که همه دکترها رو تو خرابات کنه کردی که اینجا که سراغ این دکتر رفتی که یه دکتر هم من مخوام بهت معرفی کنم برو سراغ اون دکتر چیه <تصفح> <تصفح> <تصفح> یه دکتری ایش هر قومه این خیلی خوش اخلاق اولم با کسی دهبانه نمیکنه بعدم پول نمیگیره بعدم مطبش 24 ساعته <تصفح> هستش خب این دکتر چیه میگه حضرت معصومه سلام الله علیه و رو اونجا این میره اونجا داخل حرام در کنار زریع متحر حضرت معصومه دختر مصبت جعفر این دختر رو اونجا قرارش میده دخترم فوقلاده زیاد گریه کرد یه حالتی بین حالت خواب و بیداری به این دختر توجه پیدا میکنه در این حالت بین خواب و بیداری ناگهان می بیند که از درون زریع متحر حضرت معصومه یک بانوی آمد بیرون خیلی جوان بود حضرت معصومه بنابرای یک قول فقط 18 سال عم کرده 18 سال. بنابرای قول دیگر 28 سال حده اکثر 28 ساله بوده خیلی جوونه. شون تشریف می آورد جلو و دستش رو بر روی دست های این دختر میکشه اینجوری اینجور. یعنی مفاصله اینجا اینجا اینجا سه مفصل فرمود دستات خوب شد اما پاها دوته برادرم رضا دختر از اون حالت میاد بیرون ای بابا دسته حرکت میکنه هیچ اثری از بیماری نیستش هیچ و در بوزه که چرا خوشحال میشه هم اونجا سوار ماشین به طرف مشهد مقطعس ایران مشهد به بعضی که پیاده میشن یراز حرم از درزا علی السلام دلون در که سپاد خاصی که بیماران رو قرار میدهند باز این دختر را قرارش میده و دختر رو میبندنش و اون حالت خاص برایش پیدا میشه گریه فراوان به دنبالش اون حالت از میان زاری متحر وجود مقدس حضرت علی ابن موسی الرضا آفتاب تابان رضوی ظاهر می شود یک کاسه آب دستش بود تشیف می آورد این دختر دست میکنه داخل این کاسه آب قطرات آب می کشی میاره بیرون می پاش بر روی پاهای این دختر ولن شو خوب شدی از اون حالت میاد بیرون پاهام درسته دیگه حالا هم دست ها درسته هم با درسته. مردم فهمیدن چه خبره. به سر این دختر دیگتن کلی علباش ها تیکه تیکه کردن و بردن. یه پاسداری هم در اونجای منظره رو میبینه. بلافاصل از این دختر خواستگاری میکنه. و الان زینب شمسه عروسی کرده بدون که دستش درد کنه بدون که پاش این مشکل داشته باشه و چهارت هم بچه داره. اگر کارتون گیر کرده اون جایی که دیگه از کسی کاری ساخته نیست اون وقت یه توسل قلبیشم کفایت میکنه. و هر کدوم از این بزرگوار منطرز کردم یکی از صفات امام رزا امام رعوف هست و سلام علیکه ایوحل امام رعوف به این بزرگواری سلام بکنید و عرض نیازتون رو هم از همون دور بکنید انشالله خدا اجازه دهد بازم میگم خدا اجازه بده انقدر بر رخ ما نکشند که عیسی مسیح این کارا رو کرده ائمه ما حضرت عباس ما که دازه امام هم نیست دها ده برابره عیسی مسیح این کارا رو انجام داد اگر اینا دلیل بر حقانیت باشه حقانیت یاد خیلی چرب‌تر و سنگین‌تره ان شاء الله خدای متعال ما رو با مقامات این بزرگواران آشناتر تر بفرماید مدتی محلت است و تغییر زاق است انشاالله و در این فاصلن سوالات حتما نوشته خواهد شد و ما در حد وقتمون که دو ساعت نه خواهد بود انشاالله پاسخ سوال خواهیم داد برادران، خواهران خاطرشون باشه دو هفته بعد که این جلسه هست ما ششونیم شروع میکنیم. قصدمون بر این ول دو نفرم بیشتر داخل سالن نباشن اگر خاستین تشریف بیارین انشاالله از چشین تشییف بیان که از اول جلسه، باشید یه سلباب دفرستید بسم الله الرحمن الرحیم عزیزم توجه کنن که سوالهایی که برگاهی که توضیح کردن بین شما اگر که سوالی چیزی هست بنویسید و محبت کنید که بدید که خدمات دکتر بدیم انشاءالله جهت پاسخگوی به سوالات و یه برگه ایمون پایین روی میز من گذاشتم بعضی از دوستان ظاهران شماره تلفونا رو ندادن ما تلفونا رو که یادداشت داشت میکنیم ممکنه یه وقت حالا جهت اطلاع رسانی نیاز پیدا کنیم به این تلفونا ها محبت کنید که تلفونا رو حتما در اون برگه ثبت فرمید خب از هان در واقع به ساعت مقدس آقا علی ابن موسیر رزا علیه آلاف طیعت و سنه در واقع جلب شده یه سلبات مخصوصه است کوتا من بخونم خدمت شما و شما هم انشالله که تکرار میکنید و از همجایی گرزه هده کرده باشیم تا انشالله در خدمت جناب دکتر فریدونی باشیم انشالله جهت پاسخگوی به سوالات. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلى على علي بن موسى الرزى المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرا الصديق الشحيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواطرة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك جهت خوشنودی حضرت ولی عصر ارواح و و همچنین شادی روح بزرگوار آها علی ابن مسرز علیه سلام سلواتی ختم فرمایید اللهم ساله علیه محمد بسم الله الرحمن الرحیم سوالاتی که داریم چون وقتمون خیلی خیلی محدوده نمیخوام خیلی زیاد طول بکشه از نه زیاد خیلی زیادتر بگذاره میخونیم هر چقدر حالا برسیم جواب بیدیم و البته برای پرسش کنن دیگه محترم این حق وجود داره که اگر فکر کرد پاسخ ها پاسخ های مطلوبی نیست مجدد نسبت به این پاسخ ها نظرش رو ابراز بکنه و ایراداتش رو نسبت به پاسخ بیان بکنه باز با هم بحث بکنید لطفاً عدله اثبات وجود امام زمان را بیان نمایید ما در این زمینه عدله فت و فراوون داریم شخصیتی که امروز در کره زمین وجود دارد و زنده است فرزند امام حسن عسکریه فرزند علیه و مخدره والا و نرجس خاتون هست برای مطلب براهین فراوان استواره ولی من از میان همه براهین یک برهان براتون میگم اگر رسیدیم برای بقیه براهینم مطلب رو عرض خواهیم کرد و اون اینه از زمانی که اشون به دنیا آمده سال 255 هجری قمری اشون به دنیا آمده تا الان 1431 که عمر این مقدار طول کشیده بهترین دلیل بر وجود ایشون این است که ادعی در این مدت زمان غیبت کبرا خدمت این بزرجوار رسیدن از خودشو به اینها نشان داده و ارائه کرده و کارها کرده کارها کرده این بهترین دلیل نه نیازی به خواندن فلسفه داریم نه منطق می‌خوایم بدونیم نه روایت می‌خوایم بدونیم نه آیه قرآن نمونه بسیار بارز این افرادی که میخوام براتون بگم یک شخصیست یزدی الان ایشون زنده است شهر یزدم هست اسم ایشون هم از آقا رضای باهنر با من هم ایشون آشنا هست و داستانی داره که خیلی مفصل من خیلی کوتاه میگم براتون ایشون جز مجاهدین و مبارزین بوده در جنگ هایی که ما با عراق در صورت هزار برای با آمریکا در حالت باطنیش داشتیم در یکی از این عملیات که بیت المقدس دو باشه ایشون سه تا آرزو براش پیش آمد میکنه یک آرزه این است که این پای راستش به کلی به کلی و به کلی اعصابش له میشوند موج انفجار میگیره اعصابو لح میکنه یعنی پای راست به کلی هستن از, از حس میفته میمیره یه مشکلش این بوده مشکل دومش به این موره چارم پنجام کمرش فاصله افتاده بوده مشکل سبومیش که از همین آبدتر بوده توی محل نخواه شوکیش به خاطر موج انفجار یک دونه خون مردگی پیدا شده بوده خود ایشون نقل میکرد وقتی سردد برای از شهبه ایشون رو منطلق می به مرستان امام در تبریز از اونجا شهید رهنمون در تهران و بعد شهید رهنمون در خود یه هست هر سجا مدارک هم موجوده فزشکانی که ایشون دیدن چه ارتوپیت بودن چه نورسترژن بودن فرقی نمی کنه. همشون یه نظر دادن نظرشون این بوده که باید این پا بریده بشه امپوته بشه به اسطلا چون پا مرده این پا مرده. این قبول نمی کنه به هر حال و سردردش هم با قرصهای مسکن مرتب ساکت می کرده دیکلوفه ناکیالا اسپیرینی نم دونم بروفلی نزید چیزا دیگه آشغالایی که هستم این تا ما رمزون میاد البته یه نوبتی همیشون قبول می که پاشو ببرن منتا از این محل از محل اتصال زانو به ران والا دکتر قبول نمیکنه میگه این بالا مشکل داره اینجا هم به کلی مرده به چه دردت میخوره ایشون در توالت رفتن مشکل داشته بعد زیر بغلش رو میگرفتن خیلی مشکلات داشته خلاص من نه خدا ایشون من دیدمشا شرایط حالشو برای خود من نوشته تمام این حرفا که میذارم براتون اما رو من مکتوب دارم تا ما میشه ما رمزون میشه ایشون شرکت نفتی توی یا چیزی شبیه ببین توی یزد الان حس میکنه بعد میگه که من روزا روزه می‌گرفتم و شبا میرفتم یه دهی نزدیک یزد به نام مهدی‌آباد خیلی نزدیک من اون ده هم من می‌شناسمش اونجا برآمدیم توی حسینیه خشتوگردی اونجا معلمم بود برآمدیم نماز می‌خونیم قرآن می‌خونیم کاری که در محرم میکنن دیگه مثلا اینکه روحانی رو هم ما داشتیم دعوت کرده بودیم از مشهد اونجا ایشون برامون صحبت می‌کردهش مونجا من گرفتاریم خیلی زیاد بود این پاک به جای خودش سردردو چطور بعد کنترل می‌کردم اون زمانی که ما مارمزون نبود یه قرص می‌خوردیم 4 ساعت طول می‌کشید اثرش اثر تموم می‌شد یه قرص دیگه می‌خوردیم ولی مارموزون که من خب من روزه می‌خواستم بگیرم به هیچ قیمتی من می‌خواستم روزه‌مو بشکنم لذا ساعت مثلا پنج صبح آخرین قرصمون رو میخوردیم نوه صبح سردرد شروع میشد و من باید این سردرد رو که عرض کردم اینقدر شدید بود که اگر دست خودم بود و خلاصی این اروادر رو داشتم میزدم به دیوار سرم قاش بشه درد شدیدش تا افتار رو تعمل میکردیم روحانی که آوردنم بر اونجا گفت فلانی قصه نخور که آوردیم اونجا بر اون حرف میزد با شدید من گفت فلانی قصه نخور بزن ما تموم بشه میبرم پای بوس امام رضا خودم میبرم میشم نوکرت اونجا از آقا درخواست می که از خدا بخواد مشکل تو رو حل بکنه من هم دیگه عصبانی شده بودم شبای 19ام گذشته بود 23ام گذشته بود و شب قدری که من متوقع بودم به من توجهی بشه به این آقا که این حرف و گفتم آقا اگر خدا بخواد من را شفا بده باید حتما برم پیش امام رزا یا امام رزا بخواد من را کارم را درست کرده باید حتما برم سراخش مگه اینجا این کار را نمیتونه بکنه از عصبانیت دیگه چون شب سوم ما رمزون اون شب ما افتوارمونو توی یعز کردیم و طبق معمور را افتاییم طرف این حسینی های مهدی آب حسینی هم خیلی کچولوه اصلا هم خشت و گلی هم از این ظاهری هم نداره این حسینیه متنام مقدس امام حسین قلاصه اونجا می درخش بر تاروک این ساختمان آقا بالا من بر بودم آقای که عبا کرده بودیم چرا آقارم خاموش کرده بودم شب 23 وم تو شبای قدر از های مهمتره چون احتمال قدر بودنش از دو شب دیگه به مراتب زیاد زیادتره مثل اینکه تو اون، برنامه 23 و یه نفر داره مرتب به منحه القا میکنه امشب صداد رو بلند که و یبنالحسن بگو یا صاحب از زمان بگو امشب خبری خواهد شد حالا اون بزرگوار داشت سخرانی میکرد بعد هم مصیبت مسیبت کر. روز کرد روزخونی کرد خب مردم حاضر در اون حسینی گریه میکرد من هم گریه میکردم اونتا گریه من خیلی شدیدتر بود به خاطر این مشکلات که داشتم به خاطر خودم بیشتر گریه میکردم تا به خاطر اعضای ما موسیق تو این هیروویلی که ما هفتش در پس اون تای دلمون صدا زدیم یبن الحسن یا صاحب از زمان تای دلمون صدا زدیم اینا که اصلاب طرف زنده است پرونداش هم همش موجوده هیچ برهان دیگه هم لازم نیست به نظر من برای این داریم تا دلتون بخواد. یک دفعه بندیم که این حسینیه مثل این که توش سی تا نور افکن روشن کرده باشن خب امقدر نور شدید بود که چشمان رو زد اولش بعد یه خونده که عادت کردین این چشمان دیدم نه این نور والا یه منبعیه و این منبع نور در کنار من نشسته آه. اون آقا داشت روزه میخوند ایشون هم داشت گرگه میکرد داشت گرگه میکرد. یک دفعه بعد از مقدار گردگی کردن همین آقایی که بغل دستم نشسته بود سه تا بیمارستان متخصصین متعدد گفته بودن علاج این مشکل پای شما همینه که باید به هیچ راه دیگری نیست اعصابش له شده له شده این آقا به من گفت بلند شو حرکت کن داخل حسینیه حالا فقط من دارم به اون حرف می همین دیگران که کن... گرفتار کارای خودشونن تام من نمیتونم من تو الهه نمیتونم بلان شو راه برو یه دوبار بار سه بار ایشون گفت بلان شدم راه افتادم چند راه میرم تو حسینیه بدون هیچ مشکلی آه. همین که این منظره رو من دیدم منتقل شد که این کیه تو حسینیه خشتوگلیه ما اومده بزرگ‌باوری کرد عنایت فرمود خلاصه مشکل اول ما رو اینجور حلش کرد همین که این مدتب به ذهنم خطور کرد افتادم او دستش دستشگیرات بوسیدن او هم دست دیگرش که آزاد بود گذشت رو سر من اینجوری شروع کرد به نوازش سر من کردن از جمله جاهایی که ایشون نوازش کرد همون محلی بود که تو سر من خون مردگی بود به محض اینکه، دست این بزرگوار با اون محل کرد درد سر ما رفت که رفت که رفت که رفت که تا حالا شب نیامده خب این کارا رو کرد شد بره باز مردم مشغول کاره خودشونن و من و ایشون با هم داریم یه همچین برنامی رو اجرا میکنیم اومد بره من دنباله سرش دیگه حالا دارم التماسش میکنم کجا داری میری؟ تازه دل به تو دادم خداست من یبنالحسن خجا داری میری اشون رفت از حسینی پاشفدرش بیرون اومدم برم دیدم یه چیز همچین به شدت در من نفوس کرد من را همون دمه در حبسم کرد او جلوه دیگری بود البته او رفت وقتی او رفت من شروع کردم کلاسه های ها گریه کردن یبنالحسن میگفتم صدای نعرم تا کجا میرفت تازه مردم فهمیدن یه اتفاقاتی اینجا افتاده وقتی که چراغ ها روشنگیدن ای بابا من دارم توی حسینیه خودم حرکت میکنم. چندین ما پای مرده احساب داغون تو پا که زیر بقلم رو به زج من رو توالت میبوردن. دکترم کلن و ترنگ گفته بودم باید با تو ببریمش. خلاصه مردم ریختن ای بابا. سر امام لباس های امام رو تیکی کردن خدا ساش. این نمونه زنده که الان زنده است هرکی هم خواست این پرونده رو بره ببینه هرکی هم خواست پره خلاصه این مسئله رو بازدید بکنه اسمشون همه غارضای بخونه رو بفارم بنیشن نه فقط معصوم نمتونه امام رو ببینه امام هر کس رو بخواهد مورد انایت قرار میدهد و او رو انشاءالله با یک توجه یک گونه دیگری تبدیلش میکنه این نیست غزیهش این امام زمان ما رو آدم های متعدد در طول مدت غیبتش دیدن این کسی همشه بطبی گفته باشه قطعا اشتباه کرد یکی از بهترین براهین یه برهانیه حالا میخواید توی قرآن بریم آیات فراوان میخواید تو روایات برید روایات شیع و سنی متفقت میخواید تو برید بله توراد هست. میخوای تو انجیل برید اونجا هم هست میخواید تو اوستا برید اونجا هم هست میخوای تو داستانه عرض کردم که بودایان برید اونجا هم هستش به فرمای مختلف البته اساس برای وجود ایشون دلایل متعدد ما داریم اما بهترین دارید اینه حالا یکیش من گفتم براتون تا دلتون بخواد از این موارد من سوال دارم که هستن زندانی نازندان حضرت اگر اجازه بفرمایید اونها برایش مردم نقل میکنن داستانه خودشون رو استخاره ما کارمون افراد و تفریدیه گاهی اوقات به کلی منکر استخاره بعضی ها گاهی اوقات افراد انقدر به استخاره معتقدن که برای آن که استخاره کنند هم استخاره میکنند که حالا استخاره بکنی و یا استخاره نکنی هر دوش باطله استخاره رو ما داریم منطقه چه وقت داریم اون زمانی است که انسان از قدرت تعقل و اندیشش استفاده کرده به جایی نرسیده سر دراهی مونده سر مونده چهار راهی مونده بعدم رفته با افراد دیگر هم که صاحب نظران مشورت کرده در مشورت به اونها به جایی نرسیده اونجاست که جا آدم میمونه محتر چی کنم رضا از خدای متعال نظر خواهی میکنه خدای تو نظرت رو بیان کن بهترین راه استخارهم همین کتابه اینم هم یه شرط و شروتی داره و یک آداب و ترتیبی داره که کسی خواست که تو این زمینه بره بشه برچاو عالم خواب توضیح فرمایید ما خواب رو دو قسمت باید تقسیم کنیم یک بحث خوابیدن است یک بحث خواب دیدن است خوابیدن با خواب دیدن با هم دیگه فرق میکنه خوابیدن یعنی مسئله ای که دقیقاً به جسم ما مرتبط می شود بعد از نظر علمی هم داستانش اینه که این مرکزی که اسمش مرکز سیستم عصبی ما هست مرتب در معرض ورود و خروج انواجه این پالس به قول انگلیسا ها آوران اووران اعصاب واوران به اونجا میرسه دستورا صادر میشه خسته میشه به دنبال خسته شدن او که البته در این حال که او خسته میشه عواملش هم که عضلات بدن ما باشن و استخوانا باشن خسته میشون به دنبال این خستگی خدای متعال چیکار کرده چالن نومکم سباتا براتون خواب قرار داده خواب برای اینکه آرامش مجدد به انسان برگرد این خستگی از بین برود این خوابیدن است که در این جهت انسان با همه حیوانات عالم شریکه اما یه بحث دگری ما داریم اون بحث دگر چیست؟ اون بحث دگر خواب دیدن است که اساساً کیفیتش با خوابیدن کاملن متفاوته برای که مدنب روشند بشه یه مقدمه خیلی کتاب براتون بگم انسان دو تا جز داره دو جزه یک جزه وجودی انسان همین بدن قابل رویت شه. 100 تریلیار سلول وغل همچرار قرار گرفته شده بدن انسانی اما انسان این بدن نیست این بزرگترین اشتباه انسان هاست که خودشون را در بدن و در سلولا کلاصه کنند انسان یک هویت دیگری هم دارد که این بر مبنای ارم دقیقا قابل اسمثبات بر مبنای هم قابل اثباته آیات قرآن هم فراوان در این زمینه سخن میگه اون کلمه ای که قرآن کریم بر باره سخم در این ارتباط کلمه ای نفسه و نفسن و ما سواها و الهمها و فجورها و تقباها اصلا خدا بهش خزم میخوره انسان مرکب از این دو تا بوده ما بنابرای آیات قرآن دیگه اینجا بحث روایی و آی آیات مطرح میشه ما قبل از اینکه این, این بدنمون به وجود بیاد ارواهمون رو خدای متعال خلق کرد هر روحی متعلق به یک بدن خاصه این روح در جایگاه خودش هست وقتی که عقد ازدواج بسته می شود بین دختری و پسری و بعد هم نطفه ای منعقد می شود اسپرماتوزوئید دو اوور با همدیگه ترکیب میشن در داخل رحم زن اونجا گامت درست میشه یا نطفه گشتنیده درست می شود در اونجا وقتی درست شد پنج دقیقه دیگه چشم ساعت تو نشون نده بیزمد وقتی این نطفه درست شد چه خواهد شد در داخل رحم شروع میکنه به نموف کردن این نطفه دوتا سنون بیشتر این اولش یک دونه بدن کامل درست میکنه چهار ماه شد این نطفه در داخل رحم مادر خدای متعال به اون هویت واقعی که خلقش کرده است به نام نفس یا روح به او امر میکنه به این بدن برو و اتصال و تعلق پیدا کن این معنای حیات پیدا کردن انسانه در داخل رحمدان این ارتباط برقراره انسان به دنیا میاد این ارتباط برقرار هست وقتی که انسان می این ارتباط بین او روح یا نفس به قول قرآن و بدن به کلی چی میشه منقطع میشود خابیدن و خواب دیدن به خصوص یه حالتیه بین حالت مرد و حالت زندگی در اون حالت یعنی خواب دیدن تعلق روح به این بدن چی میشه کمتر میشود کم میشه قطع نمیشه تزا انسان به خاطری که روحه آزاد شده یه سری امور رو در ابالیم دیگر مشاهده میکنه اسمش میشه خواب دیدن البته همه خواب دیدن از این سرغ نیست یه سری خواباز حرفای فروید درسته یه سری خواب از حرف های پاولوف درسته یه سری خواب هست به نام رویاه های صادقه که انسان از سری اموری متلع می شود که هرگز با اونا تماسی نداشته است. این بحث خوابه خیلی عضو بخوام اشاره می کنن سعدامت دور نشون میدن و در این تحدید اونم کم کم و خود را سرس کنم حضورتون که انشالله این سوالات دیگری هست دوستانی که حالا که همین جلسه. بگی جواب رو داشته باشن حتما بعد از خاتمه وقت رسمی من خدمتشون هستم و اما اگر نه که برای هفته بعد اینشالله جلسه بعد به لطف خدای متعال این جلسه انشالله خواهیم دای سعده ششانی بعد از رو دو هفته دیگه انشالله اون وقت وقت زیادتری میذاریم که همه سوالات بتونیم پاسخ بدیم یه سلوات به هفته فرماییم